بسم الله الرحمن الرحیم به اندازه مهربان نهایت باره الفلامیم آیا مردم پنداشتن که همین که بگویند ما ایمان داریم گذاشته می شوند و ایشان آزمایش کردن نمی شوند کسانی را که پیش از ایشان زندگی می نیز آزمایش کردیم تا خدا صادقان را متمایز گرداند و كاذبان را مشخص سازد آیا آنانی که مرتکب اعمال ناشایسته می شوند، گمان میکنند که بر ما پیشدستی خواهند کرد بعد است قضاوتی که میکنند. آنکه امیدوار دیدار خداوند است بیگمان میعیاد یعنی دیدار خدا آمده نیست و او شنوا و دانااست کسی که جهاد کند واقعا برای خود جهاد میکند حقا که خداوند از همه جهانیان بینیاز است و آنانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، بدیهایشان را از ایشان میزوداییم و بیگمان ایشان را به نیکوترین اعمالشان پاداش میده و انسان را به نیکی به پدر و مادرش سفارش کردیم. اگر سعی کنند تا تو را مجبور سازند که با پرستش من چیزی را شریک سازی که به آن علم نداری پس ایشان را اطاعت مکن بازگشت شما به سوی من است و در آنجا من شما را به حقیقت اعمالی که انجام می دادید آگاه می سازن. و آنانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بیگمان ایشان را در زمره صالحان درمیاریم از مردم کسی هست که میگوید گوید به خداوند ایمان آوردیم اما چون در راه خدا به او عزیتی رسد آنچی را از مردم متحمل می شود مانند عذاب خدا می پندارد و اگر به تو از جانب پروردگارت مددی رسد میگویند ما واقعا با شما بودیم آیا خداوند به آنچه در های جهانیانه است داناتر نیست؟ و خداوند کسانی را که ایمان آورده اند خوب می شیناسد. و نیز منافقان را خوب می کافران کافیران به مسلمانان گفتند راه ما را پیروی کنید ما بار گناه شما را به گردن میگیریم. در حالی که ایشان چیزی از گناهان مسلمانان را به گردن گرفتن نمی توانند. و در حقیقت ایشان دروگوه بیگمان ایشان سنگینباری های خود و نیز سنگین باری های دیگری را با سنگینباری های خود بر و حتما در روز قیامت از این افتراه که بربسته ان مورد سؤال قرار می گیرد. ما نوح را سوی قومش فرستادیم. او در میانشان پنجاه کم یک هزار سال درنگ کرد. پس آنها یعنی قوم نوح را طوفان فرو گرفت و ایشان ستمگار بودند. در این حال نوح و اهل کشتی را نجات دادیم و کشتی را نشانه برای جهانیان گردانیدیم. و نیز ابراهیم را نجات دادیم وقتی که با قوم خود گفت خدا را پرستش کنید و از او بترسید این کار برای شما بهتر است اگر حقیقت را می دانید واکن شما جز خدا بطانی را پرستش می کنید و از خود دروغ را می سازید را که جز خدا می پرستید مالک این نیستند که با شما روزی بدهند لذا از نزد خداوند روزی بی او را بپرستید و به او سپانس گذارید، به سوی او بازگردانده می شوید. و اگر پیام خدا را تکذیب می کنید، پس بخاطر داشته باشید که بگمان اومدهای پیش شما نیز این پیام را تکذیب کرده بودند و نیز بر پیام رسان جز رساندن پیام به گونه آشکارا. آیا ندیدند که خداوند و خلوخ را چگونه از نو پیدا می کند و باز باری دیگر هستی آنها را اثر می گرداند؟ براستی که این کار بر خداوند آسان است بگو در زمین سفر کنید و ببینید چی طور خداوند آفرینش را آغاز کرده است باز باری دیگر خداوند هستی آخرت را به وجود می آورد حقاک خداوند بر هر چی است. هر که را بخواهد عذاب می کند و به هر که بخواهد رحم می کند و به سوی او باز ده می شوید نه در زمین نه در آسمان در هیچ جای اراده خدا را عاجز کننده نیستی تا بدین این ترتیب خود را از دم تقدیر نجات دهید و برای شما جز خدا ها می و مددگاری نیست آنانی که به آیات خدا و لقای او کافر گردیدند هم ایشانند که از رحمت من ناامید شدند و همینها را عذاب دردناک هستند پس جواب قوم ابراهیم جز این نبود که گفتند او را بکوشید یا او را بسوزانید اما خداوند او را از آتش نجات داد دیگمان در این نشانه است برای قومی که ایمان دارد ابراهیم گفت شما های را جز خدا به خدایی گرفتید تا در این زندگی دنیا آن را وسیله دوستی میان خویشتن قرار دهید سپس در روز قیامت بعض شما از بعضی دیگر منکر گردیده و یک دیگر را لعنت خواهید کرد پناهگاه شما آتش است و شما را مددگاری نیست پس لوت به پیام ابراهیم ایمان آورد و گفت بگو من به سوی همانجا که پرودگار من هدایت داده است هجرت کنیده ام حقا که او صاحب قدرت منعی و با حکمت است و به ابراهیم اسحاق و یعقوب را دادیم و در میان نسل او نبوت و کتاب را قرار دادیم به او پاداش او را در دنیا دادیم و بیگمان او در آخرت از صالحان است و لوترا خاطر آور وقتی که به قوم خود گفت شما چنان فسق و جوری را متکیب می شوید که هیچ یک از اقوام جهان در آن شما پیش دستی نکرده است آیا شما براستی به مردان پیش می شوید و رهزنی می کنید و در مجالس خیش اعمال ناشایستهی را مرتکب می شوید؟ ولی جواب قوم او جز این نبود که گفتن عذاب خدا را بر ما بیاور اگر از راست گویانید؟ لوت گفت ای من مرا بر این قوم فساد پیشه پیروز گردان و چون فرستادگان ما و ابراهیم مجده آوردند گفتند ما یقینا مردم این دیار را تباه کنیده زیرا ایشان واقعا ستمگار بودند ابراهیم گفت اما لوط هم در آنجاست آنها گفتند ما بهتر میدانیم که کی در آنجا است یقینا او و خانواده را نجات خواهیم داد جز زنش را که در زمره ماندگاران است و چون فرستادگان ما نزد لوت آمدن و ای از سبب ایشان اندوهگین شد و دلش به نسبت آنها تنگ گردید گفتند مترس و اندوهگین مباش بیگمان تو را و خانواده تو نجات می دهیم جز همسرت را که او از ماندگاران خواهد بود ما عذابی را از آسمان بر اهل این دیار به سبب فسکه که مرتکب شدند فرود می آوریم و بیگمان از آن نشانه و زهر را برای مردم و باقی گذاشتیم و برای قوم مدین برادر ایشان شعیب را فرستادیم و ایشان گفت ای قوم من خدا را پرستش کنید روز که را در نظر داشته باشید و در زمین فساد کنان به طبع دست نیازید قومش او را تکذیب کردند لذا آوازی مهیب ایشان را فرا گرفت و در خانه های خود مردگانی روی افتاده گردیدند و عاد و سمود یقینا به شما از خانه‌های های نشیمنشان معلومات حاصل شده است شیطان کردارشان را برایشان برای زینت بخشیده بود و ایشان را از راه باز داشت هرچند به ظاهر حال از بینش برخوردار بودند و قارون و فرعون و هامان را آور موسی و ایشان موجزه های آورد اما ایشان در زمین تکبر کردند و پیش دستی هم نتوانستند. و هر یکی ایشان را در برابر گناهش گرفتار ساختیم بر برخی از آنها سنگ باران نازل کردیم برخی از ایشان را آواز سهنگین فرو گرفت برخی از ایشان را به زمین فرو بردیم و برخی شان را در آب غرق ساختیم چنین نبود که خدا بر ایشان ستم کند بلکه ایشان خود بر خیشتن ستم کرده بودند مثال آنان که جز خدا چیزی دیگری را سرپرستی امور خیش گرفتند این کارشان مانند انکبوت است که برای خود خانه ساخته است برای راستی که سسترین خانه ها خانه انکبوت است اگر ایشان بدانند حتی که خدا آنچرا ایشان جز او پرستند از هر چیزی که باشد میداند و او صاحب قدرت منی و با حکمت است. اینها های اند که آن را برای مردم می و آن را جز دانشمندان نمی دانند خداوند آسمانها و زمین را به حق آفرید و واقعا در این نشانه است برای مؤمنان. بخوان آنچه چه تو از کتاب شده است، و نماز را به تمام و کمال برپا دار بیگمان نماز از فحشا و کارهای ناپسند باز می دارد. و و که ذکر خدا از همه بزرگتر است و خداوند آنچه را می کنید می داند. و با اهل کتاب جز بر روش نیکو مجادله مکنید مگر با کسانی از ایشان که ستم کردند و بگویید و آنچه برای ما نازل شده است و برای شما نازل شده است ایمان آوردیم خدای ما و خدای شما یکیست و ما به او فرمانبرداریم. برداریم همچنین کتاب را به تو نازل کردیم پس به آنانی که کتاب دادیم به این کتاب نیز ایمان می آورند و از اینها یعنی مشرکان عرب نیز کسانی هستند که به آن ایمان می آورند و جز کافران کسی آیات ما را تکذیب نمی کند و تو پیش از این کتاب را نمی و نه هم آن را به دست خود می نویشتی. که در آن صورت این راهیان راه باطل مردم را به شک می انداخدند. بلکه این آیات روشنی در سینه های کسانی که به ایشان علم داده شده است و جز تمگاران آیات ما را تکذیب نمی کنند و باز این منکران حق گفتند چرا از پروردگار وی بر او معجزه های نازل نشد بگو موجزه ها یقیناً در نزد خداوند است و من صرف بیندهنده هستم آشکارا. آیا به ایشان همین بسنده نیست که بر تو کتاب را نازل کردیم که به ایشان خوانده می شود؟ بیگمان در این رحمت است و پندی برای قومی که ایمان می آورند. بگو خداوند میان من و میان شما به حیث گواه بسنده است، او آنچه را در آسمان ها و زمین است می داند و آنانی که به معبودان باطل ایمان می آورند و از وجود خداونده بر حق انکار می کنند هم ایشانند زیانکاران و با شتاب زدگی از تو عذاب می جویند اگر وعده مقرر نمی بود یقینا به ایشان عذاب می آمد و بگمان عذاب به گناه ناگهانی به سر وقت ایشان می رسد در حالی که از آن بیخبر می باشند با شتاب زدگی از تو عذاب می و بیگمان دوزخ کافران را احاطه می کند. روزی که ایشان را از بالای سرشان و از زیر پای ایشان عذاب بپشاند و آوازدهندهی با ایشان بگوید سمره اعمالی را که مرتکب شده اید بچشکید ای بندگان مسلمان من بیگمان زمین من فراخ است پس خاص مرا پرستش کنید هر کس چشنده مرگ است و سپس به سوی ما بازگردانده می شوید در این حال کسانی را که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند بگمان ایشان را در بالخانه های از بهشت جاگوزین می سازیم که از زیر درختان آن جویبارها جریان دارد ایشان در آن جودانه به سر میبرند و چی خوب است مزده نیکو کارا آنانی که صبر کرده اند و به پروردگار خیش توکل می ورزند. ای بسا جانورانی که روزی خیش را بر نمی دارند یعنی پسنداز نمی کنند که خداوند هم آنها و هم شما را روزی می دهد و او شنوا و داناست اگر از آنها بپرسید کیست آنکه که از و زمین را فرید و آفتاب و ماه را رام گردانید و به نظام آورد یقینا می گویند خداوند پس چطور ایشان بر یعنی فرشته میشوند؟ خداوند به هر کی از بندگان خود که بخواهد روزی را فراخ می کند و به هر که بخواهد تنگ می کند حقا که خداوند به هر چیز داناست و اگر از آنها بپرسی کیست که از آسمان آب را فرود آورد و با آن زمین را بعد از مرگ آن زنده ساخت یقینا می گویند خداوند بگو ستایش از آن خداست اما اکثر ایشان نمی فهمد زندگی این دنیا بیش از بازی بیهوده نیست و بیگمان سرای آخرت همان است زندگی واقعی اگر این مردم می دانستند. این بندگان ناسپاس همین که به کشتی سوار شدند با اخلاص کامل و صدق دل نیایش می کنند اما وقتی که خداوند ایشان را نجات داد و به خوشکرساند با او شریک می تا بدین وسیله به آنچه به ایشان دادیم ناسپاس کردند. اکنون از نعمت های دنیا برخوردار شوند ولی به زودی پای میبرند که مرتکب چی اشتباهی شدند آیا ایشان نمی بینند که ما صاحه زندگی شان را حرم مسئونی قرار دادیم در حالی که مردم از پیرامونشان را بوده می شوند آیا ایشان به معبودان باطل ایمان می آورند و از نعمت خدا ناسپاسی می کنند و کیست تمگار تر از کسی که بر خداوند دروغی را افترا کرد یا چون به وای دعوت برحق رسید آن را تکذیب نمود آیا در دوزخ جایی برای کافران نیست؟ و کسانی که در راه ما جهاد می کنند یقینا به ایشان راه خود را می نمایانیم و خداوند یقینا با نیکوکاران است